این داستان دختر بدون دست روز و روزگاری زیر آسمون آبی آسیابانی زندگی میکرد که روز به روز فقیر و فقیرتر میشد اونقدر که دیگه چیزی جز آسیاب و یه درخت در پشت آسیاب براش باقی نمود که روز که به جنگل رفته بود تا هیزم جمع کنه پیر مردی که تا به حال ندیده بودش به طرفش اومد و گفت چرا اینقدر به خودت زحمت میدی که چوبا رو ببرید؟ من هر اندازه ثروت که بخوای بهت میدم به شرط اینکه که قول بدی اون چرا که پشت آسیاب داری بهم هم بدی آسیابان فکر کرد و دید حتما همون درخت سیبو میگه چون غیر از اون چیز دیگه ای پشت آسیاب نداره در نتیجه به پیرمرد گفت باشه اون درخت مال تو مرد غریبه از روی بدجنسی لبخندی زد و گفت بعد از سه سال بر میگردم و اون که متعلق به من رو صاحب میشم. اینو گفت و رفت. وقتی آسیابان به خونه برگشت همسرش جلو اومد و گفت چی شده که ما انقدیه و سربتمند شدیم؟ تمام کشا و گنجه ها پر از طلا شده اما کسی اون طلاها رو نیاورده نفهمیدم چجوری از کجا اومد شوهرش جواب داد من میدونم مرد ای رو تو جنگل دیدم اون به من قول داد گنجای طلایی در اختیارم بذاره فقط به شرط اینکه اون چه که پشت آسیاب دارم و بهش بدم منم که می دونستم چیز غیر از این درخت سیب پشت آسیاب ندارم بهش قول دادم که اونو بدم بهش زن گفت وای مرد اون حتما جادوگر بوده اون درخت سیب رو نمی دخترمونو دخترمون رو می که اون موقع پشت آسیاب بوده و اونجا رو جارو میکرده. دختر آسیابان که دختری زیبا و محجوب بود تمام اون سه سال رو موتی و معصوم با خانوادهش سپری کرد تا مهلتش تموم شد. وقت اون رسید که جادوگر بدخواه بیاد و اونو ببره. موقعی که قرار بود جادوگر بیاد دختر پشت خودش رو شوز تا مثل برف پاک و سفید شد. بعد با گچ سفید دایرهای روی زمین کشید و وسط اون ازداد. جادوگر زودتر از ماهد اومد. ولی جرعت نکرد پاش رو تون دایره سفید بذاره. در نتیجه نتونست به دختر نزدیک بشه. عصبانی شد و به آسیابان گفت زود باش همه آبی که توی خونه داری بیرون ببر تا دخترت نتونه خودشو بشوره. من که نمیتونم اینطوری اونو بگیرم. آسیابان ترسو هر هرچی که اون مرد بهش گفته بود رو عمل کرد. ولی صبح روز بعد وقتی که جادوگر اومد دوباره دید که دستای دختر پاک و تمیزه. چون روی دستاش گریه کرده بود و اشکاش دستاش رو شسته بود. به طوری که داشت از تمیزی برق میزد جادوگر باز هم نتونست دختر رو بگیره. بنابراین با عصبانیت گفت اینطوری که نمیتونم بهش دست بزنم و ببرمش. پس دستای اونو ببر آسیابان وحشت زده گفت چطور میتونم دستای دختر خودم رو ببرم جادوگر نابکار آسیابان رو تهدید کرد و گفت اگه مطابق میل من عمل نکنی به جای دخترت خودت رو میبرم پدر که میترسید با ناراحتی قول داد که از دستورش اطاعت بکنه بعدم پیش دخترش رفت و گفت فرزندم اگه دست هات رو نبرم جادوگر منو با خودش میبره منم از ترس قول دادم که دستات رو ببرم. به من کمک کن و منو ببخش که قول دادم چنین کار رزیلانه ای رو انجام بدم. دختر گفت پدر هر کاری که دلت میخواد بکن من دختر شما هستم. دختر دستای خودش رو روی میز گذاشت و پدر اوناها رو برید روز بعد جادوگر برای بار سوم اومد. دختر بیچاره اونقدر روی بازوهاش گریه کرده بود که از عشق پاک و سفید شده بودن اون وقت جادوگر که هیچ حق تصاحبی براش نداشت عقب نشینی کرد و زود اونجا رو ترک کرد بعد از رفتن جادوگر آسیابان گفت فرزند عزیزم با این حسن رفتاری که داشتی من تونستم اونقدر مال و ثروت به دست بیارم که برای تمام عمر از تو مثل گوهری گرانبها نگهداری کنم. دختر گفت من دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. اینجا احساس امنیت نمی کنم. بذار برم و با کسایی باشم که بیشتر دلسوز من هستم. پدرش گفت اما بالاخره بهش اجازه داد بره. دختر بازوهاش رو بست و یک روز صبح هنگام طلو آفتاب راه سفر رو در پیش گرفت. دختر اکت همام روز بدون اینکه غذای بخوره با پای پیاده راه رفت. شبکه شد دید که به باقای سلطنتی رسیده. زیر نور ماه درختای زیادی دیده میشد که شاخه هاشون زیر سنگینی میوههایی که داشت خم شده بود. دور تا دور باغ، خندقی پر از آب کشیده شده بودند و دخترک نتونست به میوهها دست پیدا کنه. اون که تمام روز چیزی نخورده بود انقدر گرسنه بود که فریاد زد ای کاش میتونستم کمی میوه بچینم اگه چیزی نخورم از گرسنگی میمیرم. بعد زانو زد و به درگاه خدا دعا کرد که بهش کمک کنه. در اون موقع فرشته ای ظاهر شد. روی خندق پلی زد تا دختر بتونه ازش عبور بکنه. وقتی دختر وارد باغ شد، فرشته باهاش بود. ولی اون فرشته را نمیتونست ببینه. دخترک به طرف درخت گلابی زیبایی رفت، ولی نمیدونست که هاش همه شمرده شده بودن. چون دست نداشت، نمیتونست میوه بچینه. رفت کنار یه درخت، دهنش رو به شاخه نزدیک کرد. و یکی از میوه هاش رو خورد. فقط برای اینکه از گرسنگی از پادر نیاد، یه دونه میوه خورد. نه بیشتر. بو اون که دید فرشته کنار دختر ایستاده، فکر کرد که اون یک شبهه و از ترس بدون اینکه حرفی بزنه یا تکونی بخوره، میخ سر جاش وایساده بود. دخترم که گرسنگیش برطرف شده بود، رفت بین بوته‌ها دراز کشید و آروم خوابید. صبح روز بعد پادشاه که مالک باغ بود برای سرکشی اومد توی باغش وقتی به درخت گلابی رسید گلابیاشو شمرد دید که یکی کمه اول فکر کرد لبودی گلابی به زمین افتاده اما بعد متوجه شد که رو زمین چیزی نیست باغبون را صدا زد و ازش پرسید که چی شده باغبون هم بهش گفت. دیشب یه شبه توی باغ بود که دست نداشت ولی با دهنش یه میوه کند و خورد. پادشاه پرسید شبه چجوری تونست از روی خندق عبور کنه؟ تازه بعد خوردن چطوری از باغ بیرون نفته؟ باغبون در جواب گفت یه نفر با روپوش سفید مثل برف از آسمون اومد. یه پل درست کرد و جریان آب رو متوقف کرد. شبه هم از روی پل عبور کرد و وارد باغ شد. فکر کنم یه فرشته بود. من از ترس زهره ترک شده بودم و نمیتونستم باید چیکار بکنم. فریاد بزنم، وایسم، فرار کنم. به محض اینکه یه میوه خورد و غیبش زد. پادشاه گفت اونچه که برای من تعریف کردی رو برای کسی تعریف نکن. من امشب خودم میام و سرکشی میکنم. همین که هوا تاریک شد پادشاه وارد باغ شد. یک کشیش هم همراه خودش برده بود تا دعا بخونه. هر دو ساکت زیر درخت نشستن بان هم اون طرف ایستاد. نیمه های شب دختر از بین بوته ها بیرون اومد و رفت کنار درخت گلابی و یکی از گلابی ها رو بدون که به خورد. در اون مدت هم فرشته با لباس سفیدش کنار دخترک بود و اونو ترک نمیکرد. کشیش به طرف شبه رفت و گفت شما اهل زمینین یا از آسمان فرود اومدین؟ جن هستی یا انس؟ دختر در جواب گفت من روح نیستم، من یه بنده زعیفیم که جز خدا همه منو ترک کردن. پادشاه هم وارد صحبت شد و گفت اگه دختر مهربونی باشی با اینکه همه ترکت کردن من تو رو تنها نمیذارم. دختر جوانو به قصر پادشاهیش برد و خیلی زود آشغه شد. شاه دستور داد که برای دختر دستای نقره بسازن و طولی نکشید که با دخترک در یه مراسم خیلی باشکو ازدواج کرد. یک سال بعد از اینکه ازدواج کردن، پادشاه مجبور بود به جبهه جنگ بره. همسر جوونش رو به مادرش سپرد و مادرش هم قول داد که بهاش مهربون باشه و از احوالش مرتب به پادشاه خبر بده. چیزی نگذشت که ملکه یک پسر به دنیا آورد. مادر پادشاه بلا فاصله یه نام نوشت و با پیک برای پادشاه فرستاد، تا خبر پسردار شدنش رو هرچه زودتر به گوشش برسونن. پیک بدون معطلی راهی شد. اما بعد از اینکه یه مدت طولانی راه رفت خسته شد و کنار جویباری نشست تا استراحت کنه. برای طولی نکشید که خوابش برد. همون جادوگری که همیشه در صدد صدمه زدن به ملکه بود از راه اومد و آهست نامه پیک رو برداشت و به جای اون یه نامه دیگه گذاشت در اون نامه نوشته بود که ملکه بچه ناقص به دنیا آورده پیک بدون خبر از ماجرا نامه رو داد به پادشاه پادشاه هم بعد از خوندن اون خیلی ناراحت و افسرده شد با وجود این در جواب نامش نوشت که از ملکه و بچهش نهایت مراقبت رو بکنن تا پادشاه برگرده جادوگر دوباره در راه برگشت مراقب پیک بود وقتی که به خواب رفت دوباره نامه پادشاه رو عوض کرد و توی نامه نوشت که ملکه و فرزندش رو نابود کنند. مادر پیر پادشاه بعد از خوندن اون نامه وحشت کرد و نمیتونست باور کنه که پادشاه چنین چیز وحشتناکی رو خواسته باشه. یک بار دیگه نامهای برای پادشاه نوشت اما جنون اون جادوگر دخالت میکرد و نامه را عوض میکرد هیچ نامههای نامه های واقعی به دست هیچ کدوم نمیرسید. در آخرین نامه هم برای مادرش نوشته شده بود که اگر مادر بچه مقاومت کرد زبان بچه را ببرن و چشم مادر رو در بیارن. مادر پادشاه مهربون تر از اونی بودش که بتونه این کارو انجام بده. اشک ریزون به ملکه گفتش که من نمیتونم این کارو در برابر شما انجام بدم. بیا بچه تو وردار به هر جایی که میخوای برو ولی دیگه به اینجا بر نگر. بعدم بچه رو پشت ملکه بست و زن بیچاره رو با چشمای پر از عشق فرستاد بیرون. ملکه پس از یک راهپیمایی زیاد به جنگلی رسید ولی نمیدونست از کدوم مسیر باید راهش رو ادامه بده. نشست روی زمین به دعا کردن. وقتی دعا کردنش تمام شد بلند شد و چشمش به یک کل به افتاد که روی پنجرش نوشته شده بود این خانه برای کسی است که در آنجا زندگی می کند جای نیست. و دید که یک بانویی با لباس سفید مثل برف از کلبه بیرون اومد و بهش گفت همسر پادشاه خوش آمدین بعد از اینکه اونها رو به کلبه برد بچه رو از پشت مادر باز کرد و آروم خوابوندش و اومد به طرف ملکه زن بیچاره با مهربونی به اون بانوی برفی نگاه کرد و گفت شما از کجا میدونید مایه ملکم بانوی برفی جواب داد من یه فرشته نیکوکارم و مأموریتم اینه که از تو و فرزندت حمایت کنم. ملک سال‌های سال با آرامش در اونجا زندگی کرد و انقدر پرهیزگار بود که دست‌های قد شده‌اش دوباره رشد کرد و مثل روز اول شد. پسرش هم مایه راحتی و دلخوشی ملکه بود. حالا بشنوید از پادشاه بعد از اینکه ملکه قصر رو ترک کرد، طولی نکشید که پادشاه برگشت و هنوز از گرد راه نرسیده بود که سراغ زن و بچش رو گرفت. مادر پیر پادشاه گریه کنون بهش گفت که تو چه آدم بدی هستی از یه طرف برام نامه می نویسی که اونا رو از بین ببرم و از طرف دیگه سراغ اونها رو می گیری. پادشاه که از حرفای مادرش سر در نمی پرسید منظوریتون چیه؟ خلاص مادر تمام نامههایی رو که به وسیله اون جادوگر بدجنس عوض شده بود نشون پادشاه داد. پادشاه هم از شدت ناراحتی به خاطر از دست دادن زن و بچهش به گریه افتاد. مادرش که دلش سوخته بود بهش مجده داد که پسرم اینقدر ناراحت نباش. من اونا رو نکشتم. اونا رو فرستادم یه جایی توی این دنیا. پادشاه هم گفت من برای پیدا کردنشون هر چهار گوشه زمین رو با پا میگردم. خورد و خوراک بر من حرومه و حتی اگر از گرسنگی تلف بشم از پا نمیشینم و همسر و فرزندم رو پیدا میکنم. پادشاه با این عهد سفر خودش رو شروع کرد. هفت سال آزگار ها و دره ها و جاده ها رو پشت سر گذاشت. ولی اثری از همسرش پیدا نکرد. بالاخره وارد جنگلی بزرگ شد که یک کلبه کوچیک توش قرار داشت. روی کلبه روی تابلو نوشته شده بود: این خانه برای کسی است که در آن زندگی می کند. جای امنی نیست. پادشاه داشت این کلمه ها رو می‌خوند که بانوی سفیدپوش از کلبه بیرون اومد، دست اونو گرفت و داخل کلبه برد. بانو گفت: ولی نعمت من پادشاه بزرگ خوش آمدید ولی دلیل آمدنتان چیست؟ پادشاه جواب داد من هفت سال آزگاره که به امید پیدا کردن همسر و فرزندم همه جای دنیا رو زیر پا گذاشتم ولی موفق نشدم اونا رو پیدا کنم. آیا شما میتونیم به هم کمک کنین؟ بانوی سفید پوش گفت بفرمایید بشینید اول یه چیزی بخورید و بنوشید تا براتون تعریف کنم. پادشاه که خیلی خسته بود نشست رفع خستگی کنه اما طول نکشید که دراز کشید و خوابش برد. بانوی سفید پوش روی پادشاه رو انداخت. بعد به اتاقی رفت که ملکه و فرزندش در اون بودن. ملکه نام فرزندش رو پین برینگر گذاشته بود. یعنی در داور. بانوی سفید پوش به ملکه گفت به اتاق مجاور برین که همسرتون اونجاست. ملکه بیرون رفت. هنوز از اون نامه های خشونت همیز از دست پادشاه ناراحت بود و نمیدونست دیگه پادشاه دوستش داره یا نه. وقتی ملکه وارد اتاق شد، ملوفر از رو صورت پادشاه کنار زد. ملکه به پسرش گفت که صورت اونو بپوشونه. پسرک نزدیک رفت و آهسته با ملافه روی صورت مرد قریبه رو پوشون ملکه گفت پسرم روی صورت پدرت رو بپوشان. پسرک با تعجب گفت مادر چطور میتونم روی این مرد غریبه رو بپوشونم تو مگه به هم نگفتی که من پدری ندارم به هم گفتی که پدر من در آسمون هاست. من تصور میکردم خدا پدرمه این مرد غریبه پدر من نیست من اونو نمیشناسم پادشاه در حالی که تو خواب و بیداری بود حرفاشون شنید بعد بلند شد و گفت شما کی هستین؟ ملکه جواب داد من همسر شمام و این هم فرزند شماست پادشاه با حیرت بهش نگاه کرد و گفت چهره شما و صدای شما همونه ولی همسر من دستای ای داشت در حالی که شما دستای طبیعی دارین زن جواب داد به لطف خدا دستای من دوباره رشد کرد. پادشاه هنوز مشکوک بود که بانوی سفیدپوش وارد شد و دستهای نقرهی ملکه را به پادشاه نشون داد. پادشاه که فهمید همسر و فرزند گم را پیدا کرده، غرق در شادی اونها را در آغوش گرفت و فریاد زد انگار بار سنگینی از رو دوشم برداشته شد. بانوی سفیدپوش برای همه شام درست کرد. و بعد از شام پادشاه و ملکه از اون خدافیزی کردن و به راهشون ادامه دادن تا به قصد رسیدن. مادر پادشاه و بقیه کارکنان قصد از خوشحالی به استقبال اونها رفتن و یک جشن باشکوه شکوه به راه و این جشن همه رنجهایی رو که در طول سالها جادوگر خبیث براشون به وجود آورده بود رو از یادشون بود.